Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wahda. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da Wa ba'da Aziz chynowin lai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Chodawand bazaar kwa shokt gazaarim Ki ba taufiq biepāyani o Beradarani shema dar merkaz islami jundullah Muafak ba amad na mudan awalim majmoha السلسلة نشرات سمعي إسلامي ميجردن سلماني <تصفيق> أخوات با مسلمانا بكن سوكردي قلب بيدين أخوات كتا رنجو بلا می بی نمک در میانی باری خون اندر شنا روز و شه برکوشت تو گیریم نظر فرما که این میهن چی می فکری تو چی می جوید تتبعي و وحدتي امه نظامي تو زازم در ها برادر مسلمان همانطوری که خلاوند بینیاز جهاد با شمشیر را در مقابل کفار و منافقین در میدان نبرد فرض گردانیده. جهاد و مبارزه با قلم و زبان را نیز از وجایب مسلمانان قرار داده است. در حال حاضر که کفار جهان با همه وسایلشان اسلام و مسلمانان را در هر گوشه جهان هدف قرار داده و در پی نابودی و محوه ایشان می باشند هر مسلمان صادق فرض می تا با استفاده از هر وسیله ممکن شرعی در دفع این حمله جهانی و افشای توتحه های آنان سهم گرفته و از هیچ گونه سعی و پوشش دریغ نوزد از خداوند کریم تمنا داریم تا این کوشیش ناچیز ما را قبول نموده و سبب بیداری و وحدت امت اسلامی و خاصتا امت مسلمان افغانستان و طبقه جوان آن بگردن. این هم شما و داشتهای این مجموعه که شامل چند پرچترانه اسلامی با آواز برادت ابو علی می باشد.